درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان تلویزیون رنگین کمان بخش آدهام زندگانی کسبی رو شروع میکن. در بخش قبلی خلاصه ای از تاریخ خوزستان رو گفتیم و، دسترمی رو هم رسیدیم تا اونجا که حکمی میاد دستش که بیا برو به انوان رئیس عطیقی خوزستان رو بلن میشه میاد تهران حالا امروز کسرمی رو از تهرانش شروع میکنم خب کسرمی در روز اول دی گفتم وقتی به زنجان میرفت اول دی ماه 1301 حرکت کرد به زنجان اول دی ماه 1302 وسائلشو بست بلند شد ما تهران. یعنی یک سال تمام طول کشید بلند شد ما تهران فردای آن روز یعنی دوم دی ماه کسایی بلند شد رفت زارات عدلیه خودش چونه هشدار کاره کنم به حرف های خودشه راحت تری میگه میرم وزارت عدلیه و اونجا با من وزارت عدلیه که شخصی بوده به نام آقای میشا علی خونی که همون کسی که نامه رو براش نوشته بود با اون تماس میگیره ملاقات میکنه این های قومی یه چنین حرفی بهش میگه میگه که آقای رئیس آقای رئیس الوزراء رضا خان در نظر دارد که در خوزستان نفوذ دولت را برپا گرداند ولی موانع سیاسی هست که دولت نمیخواهد به آنجا قشون فرستاده شود اجالتا تصمیم گرفته شده که به وسیله ادیه و قانون دولت اقتدار نشان دهد که رایا را جد به نظر کند و از نومیدی خلاص گرداند شما را میفرستیم ادلیه مقتدری در آنجا برپا گردانید و قانون را در همه جا مجیح سازید دولت همه گونه پشتیبانی به شما خواهد کرد دقیقا این مطالب را از کتاب زندگانی من منس برمیدارم مستند معاون دلیه ادامه میده که من شما را نمی‌شناختم با کسانی شور کردم آنها شما را میشناختند و همه عقیده دارند که این کار از دست شما برمی آید. همون هر که من اول درستان گفتم هر کجا موزلی هست در مثلا شهرستان ها عدلیگی ها تصویر اونجا میفرستند. البته نه هر کجا و اونجا که لازمه میفرستند. میگه که شعور کرده آنها شما را میشناسند و همشان عقیده دارند که این کار از دست شما برمیآید. کارهای شما را در سنجان با من گفتم. من شنیدم شما عربی و انگلیسی را هم خوب میدانید. اینها نیز در این کار دخالت خواهد کرد. خلاصه کلام کسفنی پیشنهاداتی داشت که ادامه میدم طولانی نمیکنم اونجا مطرح میکنه. میگه من برم باید چون این کارها بشه همه قبول میکنن کسدی میگه که اختیار دیگه عدل... باید در دست من باشه همه قبول میکنن و کسدی موافقت خودشو رو اعلان میکنه میگه یکی از تصمیم های این دولت عبارت حسین بود که نام عربستان رو برگردونن به نام قدیمی خودش حوزستان و این گوشه ای ایران جز به نام کهن خود خوزستان خوانده نشود وزارت عدلیه به من ابلاغ کرد که مارک های عدلیه رو تغییر دهم. اون کاغذ هایی که سرفست داره تا اون تاریخ عدلیه عربستان نوشته میشد که از از اون تاریخ به بعد و اون راه بالاش عدلیه خوزستان می نشته. خب در این میان یک مطلبی هم هست که جالبه دیدار میکنه با رزاخان میگه که رزاخان وقتی نام کسدی رو شنیده بود اظهار علاقه کرده بود که کسدی رو رأساً ملاقات بکنه اونو به کسدی میگن میگه فردا من به حیط وزراء رفتم روی پله ها رزاخان پایین میامده و کسدی رو همانجا ملاقات کرده بود در مورد دیدار تسوی خودش میگه که روی پله ها استاد و مرا پذیرفت نخوصبار بود که من سردارس بقرام میدیدم با آواز آهسته و آرام سخنانی میگفت و در این زمینه دولت شما را میفرستد که در خوزستان گوزستان آبرومندی برپا کنید در آن طرف العرب گه انگلیسی هاست شما باید ادیه ای کنید که جواب ده آن باشد. پس از این ملاقات کسری و سایلز و جمع, جمع میکنه و راهی خوزستان میشه. زمستان بود اول دما بود اگه حرکت کنه فرس 5 رو به دما حرکت کرده قراره که در کرمانشاه داستان را متعیل عموم رو هم که در عدلی ادیه خوا... خوزستان خواهد بود ورد با خودش ببره به خوزستان به مرکز اندیگه شوشتر بود پس از اینکه داچتاند رو برمی داره و از بغداد و از حیق بغدادو پس میگذره و به محرم... محمره هم خرمشهر میرسد در اینجا هم یک دیداری با شیخ خزال داره که جانبه دیدار شیخ خزال جزی معمولیت کسری بود و لذا پس از ورود به خورم شهر به ملاقات شیخ میره میگه که به من گفتن که کسری در شیخ خزال در داخل کشتی خودشه چند تا کاخ داشته بدونه شهر حالا اون روز در یک کشتی مفصلی که در اون خانه کارون بود اونجا بوده سکونت داشته و به کسوی میگن که اگه میخوایی شیخ رو ببینی باد بری اونجا در این مورد کسروی بینمیسه در پایین کشتی تو فنکشیان و کسان فراوانی بودند از فلها بالا رفتم. عربی را سراپایستاده دیدم از استقبالش فهمیدم که او شیخ خزال است سلام به هم دادیم نشستیم گفتم من رئیس عدلیگی خوزستانم خواستم جنابشم و برم اصلاحان پرسش هایی کرد و گفت حقوق شما چقدر است جالب این م... اصلا زندگی کسزوی حقیقت بر اینه که تاریخ وارها گفتم باز هم میگم این آدم بزرگ وار میگه پرسید از من حقوق شما چقدر است کسری می نویسد به من گفته بودند که خزعد از سران اداره ها که به پیش او روند چون این پرسشی کند و او چون از کمی حقوق خود به میان آورد همان را دستاویز کرده ماهانه برایش تعیین می کند همه سران اداره ها اداره های از حقوق ماهانه می گرفتند و این پرسش می که آن سخن براست بوده بکنید. بنابراین تمام ادارات مملکت ما در زیر ید اختیار این شخص بوده و این جوهس های ادارات چگونه آدم هایی بودن و تحصف باقیم چی بگه آدم مسئولین مملکت ما میرن در جای خدمت بکنن و از یک نفری که جدایی مامل... شهر کشور ما رو انجام داده او منطقه رو جدا کرد ازش پول میگیرند. در اختیارش اصلا در کنارش اصلا کجا بودیم ما میگه <تصفيق> وقتی چونین, پرسش، چونین پرسشی از من کرد جواب دادم که به من حقوق کافی خواهند داد آنگاه به من اختیار دادند که هرچی کم داشتم از مرکز بخواهم از این سخن میگه نگاه تندی به من کرد و خاموش ایستاد من نیست سخنی نمی داشتم و برخاستم و خداحافظی گفته روانه گردیدم بنابراین این قسمتی که جدا شده بی خود نمونه جدا شده که ما هم مقصر بودیم وقتی بنده را به انوان رئیس یک اداره می فرستن اونجا یاباد نرم اگه میرم واقعا مثل این بزرگ از حقوق مملکت خودم از وجدان خودم دفاع بکنم، میگذرم در آن تاریخ مرکز عطلیه ایران در شهرستان شوشتر بود که از پس از خدافزی با خزال شب در احواز میمونه میرود مونه. احواز میرسه شب در میمونه و میخوابه و فردای آن روز سوار کشتی میشه و با حمات فراوان خودش خودشا به شوشتر میرسونه اون را شهری بدقواره نازیبا و کسی گفتر میابد این هم یکی از مطالعات علمی جغرافیایی جغرافی، تاریخی انسانی فرهنگی کسی آنجرا که دیده در اونجا زیبا نمیشته همه چی رو در اونجا مطرح کرده من خلاصه ای میگم فروشتر رو یک شهری کثیف و نارسا که جای زندگی مرد آدم های مثل ما نیست ترسیم کرده در خاطراتش علاقه بر میگه که درسته که پایتخت ایران در اینجا عدلیهی داشت ظاهرا مستقل ولی شیخ خزال در اونجا هم داشت او با آچه در اونجا بودن رئیس عدلیه میباید حتما یا با ادارات دیگه باید حتما ازش اطاعت کنن ولی اونگه مربوط به خوزستان عربستانی که این اداره میکرد و مدعیش بود نباشه میگه فردا صبح با رئیس عدلیه که در اونجا بوده و کارمندان در مورد آن منطقه به گفتگو پرداختیم و دانسته شد که حال خوزستان جز از آن است که تهران در تهران شناخته شده شعرهای خوزستان همه در دست خزده است. محمره و آبادان و احواز و فلاحیه و خویزه یک بار سپرده به دست اوست. فرمانروایی فرمان روانیه، روانی رسمی آن منطقه در دست او و پسترانش میباشد باشد. ایلهای عرب همه سپرده به اوست. که به هر کدام شیخی رو از حواداران خودش گمارده یعنی همه ایلا در بستر اختیار شد و به خود نبود که با رزاخان شاخ به شاخ می شد تنها سه شهر از فرمان روای او بر کنار بوده تنها سه شهر از فرمان روای بر کنار است که شوشده رو دزفول و رام هرمز باشد ولی در شوشتر و دزفول نیست کارکنان بسیاری او را می باشد یعنی کارکنان زیادی فرستاده بوده و آشوبگران و آدم کشان و عباشی که عرض کردم حضورتون در اونجا هست که همه باید در نفوز این بابا باشد و میکشتن مردم را. صداش به هیچ کجا می رسید که عدلیه قبل از این رو یعنی رئیس فعلی نه قبل از اون رو بس داده بود. کشته بودن به کسی هم فریادش نرسیده بود عدیه زلدی ممجد می کسی صداش نمیمد چه کشوری داشتیم ما میگه خسال در خوزستان دستگاه پادشاهی داشته است و قوای نظامی معتبری متشکر از نظامیان فراهان و کشتی ها و توپ ها و در اختیارش بود تعداد زیادی از اونها به کمک انگلیسان در اونجا گماشته شده بود بی خود نیست دوباره تکرار میکنم که کسری انعی رجلون میگفته در اون منطقه انگلیس ها هم به خاطر نفت و امنیتی دوله های نفتی اختیارات فراوانی بود داده بودند و استقلال او را دنبال می در مورد مردم خوزستان بررسی کرده مردم شناسی قسمت مردم شناسی خاطراتشی جمعیت شناسی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، جامعه شناسی می بومیان آن منطقه با آنکه که زبادشان فارسی است لیکن خود را عرب و ایرانیان را عجب میدانستند یعنی حتی بومیان منطقه هم خودشون را ایرانی نمی دانستن. نگوید در ششتر برعکس زنجان ملایان با عدلیه سر سازگاری داشتند زیاد بروبای عدلیه نمی پیچیدند و محاکم شرعی رو بیشتر تحمیل نمی کردند قاعدتا جواب در اینه در همون اوائل شروع به کار جالبه این خیلی جالبه کسایی میاد و سوار کار میشه و شروع میکنه کار کردن یکی از روزنامه های بغداد که گیر بگیره شیخ خزعله یه مطلبی ای می نویسه در اون مطلب می نویسه که به عنوان یک امیرنشین که یکی از روزنامه های بغداد های فراوان از خزعل انجام داده بود و او را به عنوان یک امیرنشین مستقل ستوده بود و خزعل را فرمان فرمایه مستقل آن دیار مطرح کرده بود کسری بلا فاصله مقاله مفصلی به زبان عربی و آن نشریه ها نوشته و در پاسخ مطرح ساخته بود که خوزستان بخشی از خاک ایران است شیخ حسال گناشته دولت ایران است لقب موزر سلطنه و یا و این القاب رو دولت ایران به او داده پرچمی که بر روی کشتی های او در فراز است پرچمه کشور ایران هست این گفتارها رو می نویسه در جواب اون آقا اون روزنامه به اون روزنامه مطلب می نویسه یه نوزخشم می نویسه به یکی از روزنامه های دیگه به زبان عربی البته در سوریه الالفان و این روزنامه ها برمین به دست شیخ خسال که می رسه. طبیعتاً از این تاریخ میشه آدم تصور کنه که تا چه اندازه کینه کسوی در به صلاح کینه کسوی برای شیخ در قلب شیخ خزاد به وجود اومده یه مطلب دیگه دارستانهای فراوانی هست هر کجا میرسه که مخالفت با خرافات میگه که یک روز نشسته بودیم در داخل اتاق دور هم با معمولی با <coughs> <coughs> کارمندان قده میگه یک پرستوی داخل این اتاق شد. یکی از همین افراد همین کارمندان میگه که این مر سوره الحمد میخواند، پرستو میومد اونجا. سر صدا میکنه و یکی از این هاولون میگه که این مرغ سوره الحمد میخواند کشوی با خشونت جواب میده که شما چگونه اینو تشخیص میدید که این سوره الحمده این که من میشنوام اینو من خودم میگم ولی اون میگه با میکنه که آدم به مغزش میرسه اینکه من میشنوام به ربطی به سوره الحمد نداره چه جوری شما تفسیر میکنید دادستانی رو که این آقا از کرمانشاه برداشته بود با خودش پرده بود سر نماز بوده میگه نمازش که تمام شد پرخاش کرد به من که شما دین و ایمان ندارید شما چرا چنین گفتید که از چون اختیارش داشت داشت علاقه برای که حساب اونو در اونجا میرسه تلگراف میکنه به مرکز میگه اینو ورداری اینجا اونو بر میرم یعنی یکی داخت سال کچه دی... که بود که خدمت من از کنم که جالب بود در همین آدم بود یعنی یک ماه میشه در آخر اسفند میتونیم دو ماه حدود دو ماه بود که کسری به رفته بود به وسیله امین سلح ادلیه به دزفور دوت میشه آشق مطالعات این بخواد دزفول ببینه ببینه اون را چی گذشته بره بررسی کنه مطالعه کنه. دیدیم که در زنجان و در شهرستان های دیگه چه مطالعات عمقی انجام داده و اینم کسوی و همراهی چند تن از کارون میزرن میرن به دزفول کسوی میدانست که به میرسم کسوی میدانست که این, به میدانست که این همان جندی شاپور است و لذا شروع به بررسی و تفحص آن شهر می کند و همراهان می گوید روزی شهری به نام بی و بیمارستانی می داشته که می توان گفت دانشگده پزشکی می زیرا پزشکان دانشمند دانشمن بیرون میداد محصول خلیفه بغداد هنگامی که در سوی دانشکده پزشکی برای خود بود فرستاد وقتی را از اینجا بردند دعوت کرد به بغداد آنگاه ادامه میدهد در این شهر بود که یعقوب لیس آن مرد دلیر تاریخی پس از شکست خوردن از سپاه خلیفه نشیمن گرفت ولی این مرگش اما آنش چند روزی که در اون شهر بود آن منطقه رو بررسی میکنه و فیش برداری میکنه و زمینه کتابهای خودش رو که خدمتتون معرفی کردم در شروع این بس آماده میکنه در مورد دسفون که بررسی کرده میگه این شهر کسی از شوش بوده دستفود و همچنین در اونجا مطالعه در مورد نیم زبان خوزستان انجام بده هر کجا میرسه باید مسائل اونجا رو مطرح میکنه کسوی روزخانی به نام حسن پیدا میکنه تا نیم زبان های شوشتر و دزپول رو از او یاد بگیره ولی چون اون آدم خب <تصفيق> لابد و درختارهایی داشته که کسروی ب... ب... ب... ب... خوش... خوش آید نبوده بلا خودش رد میکنه این فرسته کنار خب در این میان که رسیده نشسته اونجا کشا... کشش کسروی کش با شیخ غزال شروع میشه. شکایتی از جانب مالکی به عدلیگه میرسه که دادگاه اونو محکوم مستجر بوده اونو محکوم به اخراج کرده بوده ولی اون خالی نمیکرده شکایت برای ادیگه یکی هست رو داده اجاره بگه یکی میخواد بره بیرون دادگاه محکوم کرده این شخصا ولی اون حاضر نیست بیرون بره میگه که چون آن خانه در ناصری بود و حاکم آن شهر نیز پسر سر... به نام سردار اجل پسر شیخ خزل بود گذوی ماموری را به همراهی ای که به حاکم نوشته بود به ناصری میفرستد سردار اجل مامور را بازداشت بکنند مشکل شروع بشه اونا خود رو صاحب اونجا میدونند یک مامور اداری که دست نشونده اینجا همیشه بوده چگونه میاد این کارها رو باش میکنه میخواد در برابرشون استاده کسیم که چون به حاکم اعتراض کردم همه رو اصهای ادارت واقع در ناصری از جمله حاکم جدید خوزستان ملت الملت با نسبت به کسیم جبه میگیرن با اون رفتار کینه توزانه میکنن اجابا تمام مردم حمایت میکنن از یک کسی که جدای طلب شیخی که اومده صاحب اونجا گفته در این زمان در این زمان بود که لسپوی آمریکایی رئیس مالیه در تهران شد و برای نظم بخشیدن در ابتدا گفتند مالیات کشور مالیات عقب افتاده ها کشور این شیخ رو ازش میخواد شیخ از که های ایلات عربسی پرده به او بود و اونی سالها بود که چیزی به دولت نداده بود میدست بود میخواست همان اونا که به برگردونه بده. ده سر به ده هزار, هزار می... میرسید و در این سالها و این عمد بخانه ای بود که رزاخان بتواند خوزستان را از دست شیخ خزل باستاند و به همین دلیل خزر شروع به جمع آوری سپاه کرد از طرف دیگه حضرت ارز کردم احمد شاه رو دعوت کرد به خوزستان هرچنگون نیامد ولی میخواست مرکز مملکت رو بحانه بود همش در دست که استقلال خودشو بگیره نامه نوشت به مجلس به مجلس گفت من به دولت ایران بدهکار نیستم نمیگه مرکز دولت ایران بدهکار نیستم من بیشتر از آن که باید مالیات بدم حزینه دادم خرج کردم مجلس بلا فاصله جواب میده که مملکت اینجا باید مالیاتش باشه شما باید مالیات رو بدید حساباتون رو بفرستید بررسیب بکنه رئیس اداره مالیه تا مشکل حل بشه پخ میداره به ملایان نامه می نویسه چون میدونه چکار بکنه به ملایان ایران داخل مملکت خوشبختانه انصافاً لازم نیست که همیشه از گفت در آن تاریخ بلافاصله اینا نامه بلند به خزعل می نویسد یعنی شما اونجا بی خود نشستید شما اجازه ندارید مالیاتی مملکت رو بدید مملکت صاحب داره مملکت ناخود داره و این شخص در این جو آخرین چندین مبارزه‌ای پیش گرفت. خب روز دوشنبه دهم آذر سال 1302 از طرف قواخسل به شوش در حمله میشه. وقت قلعه نظامیان آن شهر را محاصره میکنن در همین حال بود که قوای دولتی شهر دزفول را از وجود این دشمن ها پاک کردند. و به تلگراف فرستاده شد که پیروزی خودشون رو اعلام داشتن تلگراف ایما دست در سری از دریافت تلگراف نظامیان قلعه نظامیان ساکن قلعه که به شیخ خزال محاصره شده بود جرأت گرفته و به مهاجمین حمله کردند و آنان را از شهر تراکنده کردند و به این ترتیب استراب به پایان رسید و یک مقداری هم از و یک مقداری هم بزرگ اس که مشکلات مملکت حل شد. کسایی به زمان اینکه قزاخان در خوزستان هست خوزستان را کاملا تصرف کرده است روز هم آزر میره به ناصری به همراهی دوستاش در اتومبیلی آهنگ ناصری میکنه در طول راه میگه یکی از تفنگچییان ایل سگوند که در گذشته توهینی کرده بود به حکومت مملکت کسوی دستور میده اونو میگیرند و شلاغش بسند البته کار خلافی بوده حالا من حضاوتم اینه مثل چیه رزاخان تنها با یک ازکورت رسیده بود به خدمت من کنم که دیدار شیخ خزال روز در هم آزر سردار سپه فرزند شیخ خزال به نام شیخ عبدالکریم را و همراه خود به شوش در برده بود در حقیقت گرگان. گیری بود که انجام داد خب من سخنانم در اینجا به پایان میرسه مقدار کمی هم از مأموریت کسری در خوزستان باقی است که شما رو خسته نمیکنم کنم با سپاس از شما روزتون بخیر.